مرغی دیدم نشسته بر باره توس، در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس، کوبانگ جرس ها و کجا ناله کوس. از حادثه زمان آینده مپرس، و از هرچه رسد چونیست پاینده مپرس، این یکدم نقد را قنیمت میدان، از رفت میاندیش و زاینده مپرس. آغاز دبانگشتن آن زرین تاس، جام خرابی چنین نیکاساس، دانسته نمی شود به معیار و فول، سنجیده نمی شود به مقیاس قیاس. پندیدهمت اگر به من داری گوش، از بحر خدا جامعه تذویر مفوش، اقبا همه ساعت است و دنیا دم از بحر دمی ملک عبد را مفوش.